الله الواهد الأحد الفرد الثمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك فلم يكن له ولي من الظل و تكبيرا و والسلام على خير خلقه وا بریت سیدنا و مولانا حبیب الاله العالمین ابل غوث المصطف محمد صلى الله علیه و آله و سلم سیما ناموس الدهر و امام الاسر حجت ابن الحسن العسكري المهدی ارواق و نالتورا به مقدم حلفدا فلعنت الله ادای هم اجمعين منالون لا قيامه يوم الدين خوب از این هفته شب های چهارشنبه بعد از نماز اشاء که ما سعادت داریم در این مکان مقدس به حول و قوه خداوند انجام وظیفه کنیم یه چند تا بحث کوتاه در اهمیت نماز عرض میکنم که خلاصه یکی از ستونهای دین و یکی از نشانه‌های مهم ایمان در قرآن شاید از مهمترین نشانه‌های ایمان که آدم به نماز اهمیت بده خدا در قرآن میفرماید که امروز بلاسه روز شب اول مزاهمت ماست تو این موضوع عرض میکنم که قرآن میفرماید قد افله المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشو این توجه می‌فرمی <هم> خداوند می‌فرماید که به تحقیق انسان‌های مؤمن به کمال می‌رسند، به فلاح می‌رسند. فلاح خیلی لغت زیبایی که قرآن در مورد رشد و کمال به کار گرفته. عرب ها به کشاورز میگن فلاح یعنی بعضی فامیلیشون فلاحه فلاح یعنی کشاورز در زبان عرب کشاورز یه هنری داره که شما میتونی مثلا یه دونه سیبو به این بدی یه دونه سیب این تبدیل میکنه به یه درخت درخت سیب ماهی مثلا سالی 400 کیلو 200 کیلو 300 کیلو سیب میده یعنی تو اون دونه استعدادهایی نهفته است بلقوه خدا بالقوه در اون دانه استعدادهایی قرار داده اگر کسی بتونه اینا رو شکوفا کنه به فعل در بیاره این به یه درخت سیب تبدیل میشه. اینو میگن فلاح. من این حالیکه این هنر رو نداره این دونه رو بهش میدید فاسدش میکنه، نابودش میکنه. اونو اونو میگن قرآن میگه خسران. من خسران اینه که آدم این دونه ای که استعداد داره یه درخت تنومند بشه اینو آدم نابود بکنه بگند از نازمه این ببریم اون خسرانه انسان هم هم انسان استعدادهایی درش نهفته است مثل ما الان مثل اون دونه سیبی پیامبر می فرمودن انتم کل معادن نمیدونم منال فزت فرمودن که شما مثل ما... معدن میمونیم معدن طلا و نقره بله و یه هنری باید باشه اینا رو بتونه استخراج کنه ما ها استعداد داریم هممون که بشیم سلمان فارسی بشیم ابوذر قفاری هرچی که خدا به سلمان داده به من و شما هم داده چیزی که از سلمان مثل اون کشاورز میمونه این استعدادهای نهفته در درون خودشو شکوفا کرده یکی نمیتونه این کار رو بکنه این خسرانه حالا خدا میگه یکی از چیزهایی که مثلا کشاورز اگه بخواد یه دونر رو شکوفا کنه چی میخواد؟ مثلا زمین مستعد میخواد، آب میخواد، کود میخواد، نور آفتاب میخواد، هرست میخواد اون چیزا کشاورزا بلدند مثلا شما یه زمین رو بهش میدیم میگه این زمین استعداد نداره من تو این زمین بذر نمیپچم چون دونه رو نفله میکنه گوهر پاک بباید که شود لایق فیض ورنه هر سنگ و گلی لولو و مرجان نشود این, این کشاورز این زمین ها رو ایجاد میکند این دانه چی میشه شکوفا میشه خدا میگه یکی از چیزهایی که باعث فلاح میشه رشد انسان و شکوفایی انسان میشه ایمانه قد افل حل مؤمنون بعد مهمترین مهمترین نشانه ایمان رو میگه چی؟ اقامه ای نماز اللذین هم فی صلاتهم هم اون که حالا من بعدها هفته های بعد راجع به نمازی که از نظر قرآن مطلوبه یه عرایزی عرض می کنم یکیش همین خشوعه چون هر نمازی از نظر اسلام مطلوب نیست به این خدا گفته فویلون للمسلین وای با حال اونایی که نماز میخونن و شکوفا نمی من هر نمازی اون نمازی نیست که قرآن گفته حالا من میگم نماز قرآنی ویژگی هایی باید داشته باشد. اما الان امشب میخوام این عرض کنم که یکی از نشانه های مهم ایمان اقامه نمازه. هر جا خدا میگه ایمان بعدش میگه اقامه نماز. مثلا در مورد قرآنم میفرمایید زال کل کتاب لا وفی فی لل متقین. میگه شک نکنین این کتاب انسانهای با تقوا رو هدایت میکنه رشد میده. آدم با تغوا اگه بیاد کنار صفری قرآن بشینه شکوفا میشه. شما میگه آدم با تغوا کیه؟ میگه الله زینه یومنونه و یقیمون یویمونه سلام. می‌تو باز میگه که با تقوی کسیه که اولا به قیب ایمان داشته باشه کتاب ها یه فهرستی دارن من مثلا یه کتاب که میخوام بخرم یا به من معرفی کنن من این فهرستشو نگاه میکنم ببینم که این کتاب تو چه موضوعی صحبت کرده یا به دردم میخوره یا نمیخوره قرآنم هم اینه صفحه اول به شما میگه که اگه شما ایمان به غیب نداری این کتاب به دردت نمیخوره این کتاب کسانی رو هدایت میکنه که غیب و قبول داشته باشند قیب یعنی چی؟ یعنی چیزایی که آدم با چشمش نمیتونه ببینه با دستش نمیتونه لمس کنه با بینیش نمیتونه بوشو استشمام کند با گوشش نمیتونه صداشو بشنبه این حواس پنجگانه آجزند از اون که اونو ادراک کند مثلا قیب یکیش خود خداست خدا قیبه دیگه کسی الان بین شما از خدا رو دیده باشد کسی بین شما از بگه من صدای خدا رو شنیدم به این توجه بفرمیدیم ایمان به قیب یا مثلا یکی از مسادیق قیب ملائکند یکی از مسادیق قیب چیه روز قیامته یکی از مسادیق قیب وجود نازنین کیه حجت ابن الحسن ارواه و نافده. حالا یه ادنه میان میگن ما چیزی که نبینیم قبول نداریم این کتاب نمیتونه اونا رو هدایت کنم. میگه آقا وقت رو تلف نکنم به میوازی اینجوری میگه من چیزی رو نبینم قبول ندارم یه دانشمند اینا گویا دا دانشمندم هستن یه دانشمند غربی در کتابش نوشته بود جراح هم هستین گفت من تعالی روح رو زیر چاقوی جراحیم پارش نکردم من مثلا با چاقو جلش ندادم من چیزی که زیر چاقوی جرراحیم نیاد قبول ندارم ولی معده رو پاره کردم قبولش دارم من کلیه رو پاره کردم که قبول دارم من قلب رو با چاقو چگاه میکنم میشکافم قبولش دارم اما چیزی که بگن دیده نمیشه لمس نمیشه زیر چاقو نمیاد من این حرفا رو قبول ندارم خب این کتاب نمیتوند رو هدایت کنند اساس این کتاب اعتقاد به اعتقاد به خدا اون میگه من چیزی که نبینم قبول ندارم خب خدا دیده نمیشه من اون اوایل انقلاب من انقلاب که پیروز شد من رانمایی بودم اون موقع رانمایی بود؟ دیگه رانمایی رم کردن دیگه چیز اعلام مثلا کلاس هفتم بودن خب کشورم افتاد دست کومونیسته حالا که سن ما هستن میدونن ها شما الان اصلا تمام مدرسه ها دست این تودهی افتاد فدایی افتاد دیگه خوبه سازمان مجاهدین بود که هملا این ها بیا ای اسمی از اسلام داشتن همه محل تاخت و تاز این هاشون یه معلم ریاضی ما داشته مثل های وکیلی بود این کمونیست بود تودهی بود همشم کتاب های سمد بهرنگی رو می آورد من اون موقع سمد رو نمی می داد به ما بخونیم بعد بیانیم براش تعریف کنیم خلاص کمونیست بود با ما گای کو هم می اومد گای می اومد تو حیات فوتبال هم بازی می کرد یه روزی اومد سر کلاس خب خم... بچه ها مثلا شما کلاس هفتم، هم سیزد در سال دیگه مات گفتش که بچه‌ها یه سوالی ازتون دارم تخته وجود داره گفتن که بله تخته وجود داره گفت. گفتن آقا این تخته دیگه نشوند کو پنجره وجود داره گفتن بچه ها خوششون اومد این بحثا رو دوست دارن گفتم بله پنجره که وجود داره گفت کو کو بولم کو لامپ وجود داره گفتن بله اون لامپ کو میز وجود داره گفتن بله گفن. گفت خدا وجود داره گفتن بله گفت کو خدا. گفتن خدا گفتین یه کلاه گنده سر ما گذاشتن دادم گفت اینجا می میذاره ما کلا رفته حواسمون نبوده هوشمون رو به کار ننداختیم عقلمون رو به کار ننداختیم سرمون کلا گذاشتن من گفتم در وجود داره شما نشون دادی گفتم تخته وجود داره شما نشون دادی اما گفتم خدا وجود داره نتونستین نشون بدین این برای که ما قفلت کردیم این کلام سرمون رفته حالا باید درستش کنیم خب زمین این که قرآن میفرماید تو روایت هم هست زمین از وجت خالی نمیماند یه معناش اینه آدم از یه حرفا بزنه همین از بین جمعیت آقا یکی بلند میشه میزنه تو دهنش چون <تص> این یعنی زمین از خودجت خالی نمیمونه حرف حسابی زده میشه یه بچهی بلند شد هم سیزد چهار در ساله گفت من سوال کنم شما جواب میدی گفت من جواب میدم گفت من معلمم دیگه گفت شما چشم داری گفت بله گفت که گفت اینا. گفت دهنم داری گفت بله گفت پام داری گفت بله گفت اینا. گفت عقلم داری گفت بله گفت کو دید نمیتونه نشون بده گفت باید یه کلاه گنده داری سر ما میذاری ما رو ساده گیرا فردی و شو میخوای کلا سر ما بذاری گفتم پاد کو نشون دادی گفتم چشت کو نشون دادی اما گفتم عقلت کو چرا موندی گفت این چیزایی که من رو تخت مینویسم خب معلم ریاضی بود این نشانه عقل منه گو پس ببین تو میخوای از اثر پی به ببری خود شما نشانه وجود خدا هست گفت اگه این چند خطی که رو تخت نمی نویسید دلیل بر عقل توه وجود تو دلیل بر وجود خدا هست گفت اگه از اثر میخوای پی به مؤثر ببری تمام عالم و آثار خدا پر کرده اما دیگه نگو ما چیزی که نبینیم قبول نداریم نه ما عقل رو نمیبینیم قبول هم داریم الان ما درد رو نمیبینیم قبول هم داریم حالا شما بگو, بگو آقا من پام درد میکنه مادرت قبول میکنه پدرت قبول میکنه نمیبینه که دیده میشه آقا درد یک کسی رفت رو منبر توجه بفرمایی یه سلوات بفرستید سلاله موسیقی رفت رو منبر گفتن بهش که تو شاگرد امام صادق بودی حالا چرا از ایشون جدا شدی خودت یه مکتب زدی فتوه میدی ابو حنیفه ابو حنیفه تو کوفه رفت منبر اومدن گفتن تو که شاگرد امام صادق بودی چرا از اون جدا شدی حالا خودت جدا مکتب درست کردی گفت امام چند چیز میگفت من قبول نداشتم از او جدا شدم او میگفت خدا دیده نمیشه من خدایی که دیده نشه قبول ندارم ابو حنیفه میگه خدا دیده میشه که خودش رو نشون نمیده روز قیامت همه خدا رو میبینند این مکتب ابو حنی آیات قرآن هم میخوند که الاربه ها چی؟ نازره خدا در مورد بهشتی ها میگه اونا به خدا نگاه میکنند پروردگارشون رو میبینند پروردگارشون نشون خدا دیده میشود چیزی که از تو دنیا حالا سلاح دیده بشه قیامت میبیننش گفت او میگفتش که خدا دیده نمیشه من اینو قبول ندارم او میگفت شیطان از آتش جن از آتش دیگه و خدا اونو روز قیامت میندازه تو آتش جهنم آتش به آتش اثر نمیکنه کنه من اینم قبول ندارم. پشت سر هم می گفت من که وقتی تون گرفته میشه. شه می چند چیز تو مکتب امام ساده او من نمی پسندیدم بحلول پای منبر بود یه دونه از این کلوخا برداشت محکم زد تو پیشونی ابو هنیفه و اینم دوت که آ مریداش ریختن سر بهلول بهلول گفتش که این میگه من چیزی که دیده نشه قبول ندارم اگه دردش گرفته نشون بده کو کجا درد گرفته گفت کجا درد میکنه گفت پیشونیم گفت نشون بده اون دردو که نم اون تو که میگه من چیزی که دیده نشه قبول ندارم نوبت چو به خدا رسید آسمان تپید درد نمی نمیبینیم قبول داری به خدا که میرسی میگی چیزی که نبینم این یک خدا گفته ما انسان رو از خاک خلق کردیم کلوخ هم خاکه خاک به خاک اثر نمی کنه تو چطور دردت گرفته تو که میگی آتیش به آتش اثر نمی کند. شما ممکنه بگید ما از خاک خق شدیم الان چیم گوشت و استخونیم دیگه الان شدیم گوشت عقون الان من یه مشت بزنم تو صورت شما اثر نمیکنه گوشت و استخون به گشت استخون جا به جا می میریم. به خدا آدم است با یه مشت کار شما رو می سازه. یعنی محال شما بتونیم مشت رو تحمل کنیم. گوشت و استخون به گوشت و استخون منا یه رو نگاه بزنم تو سر شما اثر نمیکنه <تصفح> یا یک کله آدمی رو بکومم دو سر شما این یعنی چید سنگ هست میخوره رو سنگ اون سنگ و پودر میکنه چطور سنگ رو سنگ اثر نمیکنه آهن هست آقا میخوره رو آهن آهن رو دونیم میکنه آتش هست که فولاد و زوب میکند آتش هم هست که سماوه رو نمیتونه روشن کند چطور شما میگی آتش با آتش اثر نمیکنه حالا قرزم این خدا میگه اگه میخواین این کتاب شما رو هدایت کنه باید قیب و قبول داشته باشین ایمان ایمان به قیب بعد یکی از مهمترین نشانه های ایمان رو میگه اقامه سلات و یقیمون از سلات دلتو قد افلا المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه چون میدونید اصل دین اصلا چون وقتتون رو نمیگیرن اصل دین اینه که آدم ارتباطش با خدا نیکو باشه کسی نتونه آقا رو با خدا نیکو کنه اصلا دین معنی نداره دین یعنی ارتباطه شایسته با خدا که اون نمازه نماز ارتباط نیکو با خداونده قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاوکم آیه قرآن یا رسول الله اینا بگو خدا ان... استاد ما اینا... این آیه همیشه اینجوری معنی میده خدا به اندازه پوست تخمه برای شما ارزش قائل نیست اگه این دعاهاتون نباشه، این راز و نیازتون، این عشق و زاریتون نباشه ارزش انسان به ارتباط با خدا هست الان اگه حضرت زهرار آقا این همه میگن زن بزرگی بوده این مالی این است که رابطهش با خدا نیکو بوده اگر امیر المومنین رو میگن شخصیت برجستهی بوده این رو با خدا اصلاح کرده من تو روایت دیدم اگه کسی بتونه رابطهشو با خدا نیکو کنه خدا همه چی او رو اصلاح میکنه من اگه کسی ارتباطشو با خدا اصلاح کرد خدا امور او رو به اهده میگیرد همه امور او رو اصلاح میکنه. اصلا به خاطر این تو روایت هست دین بر پنج ستون استوباره حالا امروز چون روز اوله من دارم اینجا صحبت میکنم دین پنج تا ستون داره یکی از این ستون ها نمازه ستون خیلی مهمه اینه که بنا اگه بخواد دوام داشته باشه بقا داشته باشد، فونداسیون قوی میخواد ستون های خیلی اسلام یه دین ابدی دیگه هواللزی هو ارسل رسولهو بالهدا و دین الحق لی او علی دین کله ولو کره المشرکون اسلام یه دینیه که بقایش ابدیه این ستون‌های خیلی مستحکمی میخواد یکی از این ستونها نمازه اگه همین نماز جماعت ها نباشه این مسجدا نباشه این اذانا نباشه اینکه مردم روزی پنج بار میان ن... دین کم کم چی میشه؟ کهنه میشه، فرسوده میشه، مندرس میشه ضعیف میشه از بین میره این نماز یه روح تازهی همیشه به دین میدمد شما تا یه خورده از خدا قافلشی، از معاد قافلشی از آن میشه مردم دوباره وضو میگیرن میان مسجد، یاد خدا میکنه. دوباره دین رو چی میکنن؟ هرچی این نمازها باشکوتر باشه دین چیه؟ زنده تری؟ الان شما مثلا اگه این، اینجا بیاین موقع نماز هزاران نفر بیان توی مسجد جا نباشه توی این حیات و اینا برو دین, دین عظمتش بالاتر یکی از چیزهایی که دین رو در این قرون و احسار زنده نگه داشته همین اقامه نماز پنج دسته یکی زکاته پول ندین بدون پول آقا هیچ کاری پیش نمی روید عل جماعه همین مجلسی که اینجا گرفتین امشب بعد از این هزینه داره شما اصلا یه بلاکارد بخوایم بزنین فقط هم یه دونه بلاکارد بگیم ما شهادت حضرت حمزه سید الشهدا رو تسلیت میگیم بعد پول بتیم باید یه لامپ رو روشن کنی که مردم بیان اینجا نماز بخونن هزینه بعد بکنی شما همین نماز جماعتی که اینجا اقامه میشه هزینه داره بدون اصلا بدون هزینه نمیشه شما کوچکترین قدمی برات دین برداری پیغمبر فرمودن اگه ثروت خدیجه نبود من دین رو نمیتونستم پیش ببرم بدون مایه فتیره <تصفح> هیچ کس نمیتونه بدون مایه قدمی برداره اون زکاته اینکه که مسلمین پول میدن حزینه میکنن خمس میدن زکات میدن انفاق میکنن این،, این باعث اقامه دینه یکی حجه یکی حجه یکی روزه است همین مارمزون که شد دین یه حیات مجددی پیدا کرد همین روزه که میگیرین عید فطر که میشه یه افطاری میرین شب قدر میآین همین دین رو چیکار میکنه آقا تجدید میکنه قوا... تجدید قوا میکنه پیکره ی دین یکی دیگه ولایته محبت اهل بید ولم یوناده به شیء محرم که میشه محبت اهل بید سفر که میشه اربعین که میشه محبت اهل بید این دین و زنده نگم میداره به طور عام ولام یوناده به شیئن کما نودیه بل ولایت به هیچی هم به اندازه محبت اهل بیت تاکید نکرد چون اون چهار هم این نگیمی داره اگه امام حسین نبود نماز هم چی شده بود از بین رفته بود اگه امام حسین نبود حج هم از بین رفته بود اگه اهل بیت نبودن زکات هم از بین خود اونها رو ولایت نگیمی داره به یکی از ستونهای مهم دین نمازه تو همه عدیان هم بوده من محض نمونه یکی از دینهای خیلی بزرگ دین یهوده دیگه که حضرت موسی متکفلش بوده از. خدا خدا به موسی میگه که به این توجه بفهمه ایننی ای الله لا اله الا انه فعبدنی و عقم صلاة لذکری تو دین موسی نماز بوده مثلا من دینی ندیدم نماز توش مثلا در دین ابراهیم ابراهیم چی و وجهت و وجهی للذی فتر از سماوات یا میگد رب جعلنی این دعای ابراهیمه رب جعلنی مقیم صلاة و من زرریتی خدا یا هم منو از کسانی قرار بده که اقامه نماز میکنند هم ذریه منو از اونای قرار بده که اقامه نماز میکنن به موسی میگاد اقم الصلاۃ لذکری حضرت عیسی بن مریم میگاد جعلنی مبارکا عینما کند و اوسانی به سلات و زکا ما دوم تو حیا میگه خدا به من وصیت کرده تا زندگی نماز و اقامه کن زکاتم بده نماز تو دین ایسابن مریم بوده تو دین حضرت موسی بوده تو دین حضرت ابراهیم بوده اصلا شما دینی پیدا نمیکنید که توش نماز نباشد ارتباط با خدا نباشد من اگه اجازه بدین امشب عرایزم رو تکمیل میکنم به همین دو تا روایت که یاد داشت کردم میخونم به خاطرین در اسلام میگن اگر کسی نماز رو عمدن ترک کنه کافره پیغمبر میفهند من ترک از سلاح متعمدن فقط کفره اگه کسی عمدن نماز نخونه از دین خارج ضروری دینه دیگه اینا تو رساله هم هست فوقه ها میگن اگه کسی ضروری دین رو ترک کنه کافره نجزه یعنی کسی بگه من نماز و قبول ندارم و نمی‌خونم. من توجه جبویم این از خارجه. من یه حدیثی یادداشت کردم از زراره ابن اعیون از کتاب شریف کافی. او از امام صادق سوال کرد که من در کتاب من این, این کتاب الان در دسترس هست نیست احتمالاً نیست. من در کتاب امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیه السلام خوندم که حضرت امیر گفتن گناهان کبیره هفت است. گوش کردین؟ من این حدیث رو دیدم. این حدیث را دیدم اما این کتاب من ازش داشت قبری کتاب امیر المومنین. حالا اتمالا اون زمانها بوده کتابی منصوب به حضرت امیر که تو اون کتاب گفت من دیدم امیر گناهان کبیره را هفت دادونسته یک کفر شرک کفر این یک دو قتل اینکه آدم یه بی رو بکشد قتل سه عاق والدین چهار رباخاری پنج خوردن مال یتیم خوب گوش بدین شش فرار از جهاد اینکه آدم از جهاد فرار کنه مسلمانا ذلیل میشن خارشن چون اگه آدم اهل جهاد نباشه مسلمین چی میشن ذلیل میشن خار میشن همه میذارن تو سرشون فرار از جهاد هفت ارتداد اینکه آدم از دین برگرده مثلا زرتشتی بشه مسیحی بشه بعضی میگن من میلم مسیحی میشه میره زرتشتی میشه این ارتداده توجه هفت تا میگه من تو اون کتاب دیدم گناهان کبیره هفت هست امام فرمودن بله جد ما امیر در اون کتاب هفت گناه رو گناه کبیره شمونده گوه من یه سال دارم گوش بدین زورت ابن عیون گوادم یه در هم مال یتیم و بخوره بالاتره یا نماز نخونه ترک نماز کند حالا مثلا کسی یه در یه در هم پول خورده دیگه به پول امروم مثلا یه تومن پول خرد بوده پا بوده بوده درهم آدم یه تومن مال یتیم رو بخوره بالاتره یا اصلا نماز نخاند حضرت فرمیدن ترک نماز بالاتره گفت با چطور ترک نماز تو این هفتانی ولی خوردن مال یتیم هست گفت امیرالمومنین خوردن مال یتیم رو گناه کبیره دونسته اما ترک نماز رو گناه کبیره نایی حضرت فرمیدن تو نفهمیدی. گفت چطور؟ گفت اولیش چی بود؟ گفت اولیش کفر بود گفت ترک نماز کفره گفت, تر... گفت گناهان کبیره که تا هفتا نیست هفتاد تاست بر میگرده به این هفتا ترک نماز گفت گفت تو نشنیدی که پیغمبر فرمود من ترک از صلاح فقط کفره. اگه کسی نماز رو ترک کنه کافره گفت اونی که ترک نماز میکنه کافره بالاتر از اینه که یه درهم مال یتیم رو بخورد. این یه حدیث یه حدیث دیگه بار از هر دو از کتاب کافی نوشتم راوی به امام صادق گفت چرا به زناکار کافر نمیگن اما به تارک سلات کافر میگن میگه که آقا زناک ببخشید من معذرت میخوام جای مقدسی هم از این لغت زشت رو به کار بردم حالا بعضی هم میان یه دفعه من یه جا زنا گفتم یه خانومی اومده همه در گوه ها رو منبر شما خید گفتم خب ارا چی بگم من گفت بگین عمل منافی افت گفتم دیگه خب باید لغت لغتنامه ببریم حالا بعدم معنی کنیم که منافی چیه افت چیه بعدم من که از قرآن مقدستر نیستم گفت چطور مگه؟ گفتم قرآن میگه لا تقرب و زنا گفت من تالا این توجه نکرد خدا توجه کرد توجه می... خدا با اون عظمتش میگه زنا نکنی من که دیگه از قرآن مقدستر نیستم که بعد قرآن رو تو همین مکان مقدس میخوند الان یکی میاد الان با صوت زیبا میخونه مردم هم چهچه میزنند تب... میگه لا تقرب و توجه <تص> این عیبی ندارد که کسی بالا لغت زنا رو به کار ببرد که خدا به کار برده حالا من میگم شما مشمعز نشین یکی زنا کرده خدای نکرده اصلا باز زنای محسنه کرده با زن شوهردار به این کافر شما نمیگین اما به کسی که نماز رو ترک میکنه کافر میگین سوال کرد گوه چطور پیغمبر گفته من ترک از سلام متعمدن فقط کفرم آقا فرمودن اونی که زنا میکنه شاید شهوتش طغیان کرده باشه ناخودآگاه کرده بعدم پشیمون شه می یه وقت شهوت اینجوریه دیگه وقتی طغیان میکنه کنترلش خیلی سخته من غضبم اینطوریه آدم وقتی آدم وقتی سعی کنه غضبش رو فرو بنشونه و الا غضبو اگه رها کنی هر بلایی ممکنه سر شما بیاد اون خیلی اون عصبانی میشن بچه‌ی خودشونو کشتن عصبانی شده مادرشو هل داده گیجکاش خورده به یه جایی تو coma رفته خب غضب کنترلش خیلی سخته شه گفت شهوت ممکنه بر اثر قلبه نفس باشد آدمی بعداً هم پشیمون شه تو سرش هم بزنه اما اونی که نماز نمیخونه مال شهوت نی اون خدا رو قبول نداره شما نمیتونه بگی آقا این بر اثر قلبه شهوت نماز نمی کنه. نه این امر خدا رو استقفاف میکنه فرمان خدا رو خفیف میشمرد این میگه که این احانت به خداست اما اونی که زنا میکنه ممکنه که بر اثر قلبه شهوت باشد هم پشیمون بشه خیلی هم میبینید بعدش پشیمون میشه دو هم میزنه توبه هم میکنه اما اونی که نماز نمیخونه اون میخواد بگه من خدا رو قبول ندارم این کفر، اون کفر نیست من ترک از سلام متعمدن فقط کرد بحثم تا جا باشد حالا اشانا کم کم از هفته های بعد اگه اومدم نماز نیکو رو میگم حالا اون... چون خدا میفرماید که هر نمازی رو که من قبول ندارم ل للمسلی وای به حال اونایی که نماز میخونن و تربیت نمیشند اسری رو اونا نمیکنه نماز بعد میگم نمازی که تاثیر داره و چه ویژگی هایی از نظر قرآن داشته باشه از نظر روایات داشته باشد هر نمازی که مربی انسان نیست یک هم ذکر مصیبت کنم الان ایام ایام شهادت حمزه سید الشهداست ایام جنگ اهده دیگه نیمه شوال روز جنگ اهده روز شهادت حضرت حمزه است از طرفی هم ایام وفات حضرت عبدالعظیم هم هست عبدالعظیم حسنی حالا من تو این دو سه دقیقه ای که از یه ذکر مصیبتی میکنم یه اشاره ای به حمزه سیدوش پیغمبر میفرمودن یه جمله از پیامبر بگم می هر کی بیاد مدینه منو زیارت کنه احود نره و اموی منو زیارت کنه به من جفا کرد خود پیامبرم همه شنیدین تا زنده بود دو روز از هفته می رفت سر قبر حضرت خیلی هم دور بود یک فرسخت تا مدینه راه بود محل جنگ احود پیامبر پیاده هم می اومد دو شنبه ها می اومد تنشنبه ها می اومد سر قبر حضرت حمزه که مقام شهید رو تجلیل بکند این خیلی مهمه که آدم سر قبر شهید بره حالا دیگه سر قبر سید دو شهده رفتن که حسین ابن علی علیه السلامه که دیگه دو. حالا اون موقع سید و کی بود همه حضرت حمزه بود بعد که پیغمبر از دون حضرت زهرام تا زنده بود این دو روزو میومد. به سنت پیغمبر می میکرد. ولو پهلوشون هم شکسته بود حال خوشی نداشتن اما دوشنبه ها خودشون رو میرسوندن به احد. و پنج شنبه ها. اما من یک کلمه میخوام ذکر مصیبت کنم. همه شنیدین حمزه رو مصلح کردن. رو برید. همز خیلی اذیت شد این وحشی آمد بینی همزه رو برید چشماش در آورد گوشاش رو برد، برید این لبهاش برید تمام انگشتان دستش رو کرد انگشتان پا رو قد کرد این شکمش رو پاره پاره کرد جگرش رو بیرون همه امعا و احشاش رو بیرون کشید میگن هند اومد از جگرش خورد که میگفتند هند جگر خار این به دندون کشید جگر جناب همزه رو وقتی پیغمبر اومد بالا بدن همزه خیلی بیتابی میکرد چون این کینه رو که نسبت به همزه میدید بینیشو بریدن لباشو بریدن چشماشو در آوردن گوشاشو بریدن بلند بلند گریه میکرد هی هم گله میکرد گفت همه شهدا گریه کن دارند برای عمومیش که گریه نمیکنند این مادرای شهید، پدرای شهید، خواهرای شهید شنیدن این گله پیغمبرو، شهدای خودشون رو رها کردن، جمع شدن دور بدن حمزه، شاید 50 60 نفر جمع شدن، بلند بلند گریه می‌کردن. پیغمبرم هی دعا می‌کرد، می گفت خدا خیر بده هر کی برا حمزه گریه می‌کنه. مجلس خوبی بود، پیغمبر گریه می کرد برای شهید خانواده شUHHADA گریه میکردند برای شهید یه وقت بین گریه یکی اومد به پیغمبر گفت صفیه خاتون داره میاد احد خواهر حمزه عمه رسول خدا پیغمبر دیگه گریه رو رها کرد اومد جلو صفیه رو گرفت گفت عمه جان هیچ نمی تونه بدن برادرشو اینجور ببینه گفت من اجازه نمیدم گوم من از مدینه تا احد دویدم گو اصلا نبینم دق میکنم منو برام نگردون پس یه بهره ای از برادرم ب... پیغمبر صلاح ندید که این رو از برادر برگردوند اومد عباش و انداخ رو بدن حمزه ابا رو که بندازی پا بیرون میمونه دیگه خو... طبیعتا دید انگشتان پارم قطع کردن گفت خواهر انگشت بریدرم نبینه انقدر میگن خار و خاشاک رو پاهای ام زریخ پاهام شد اومد گفت امه جان بیا اما عبا رو کنار نزن بقل میکنی درد دل میکنی ودا میکنی از رو عبا باشه, عبا باشه. قول داد سفیه عبا رو کنار نزن آخرین جمعه باشه من از شما سوال میکنم مگه سر همزه رو بریده بودن نه سرش رو نبریدن مگه رو بدن همزه اصل دونده بودن اما زینم رو آوردن تو گودال قتلگاه یه رو پوشم رو بدن ام. نه رو پشت انداختن همون پیراهن پاره ای هم که تنش بود به قارت بدن اوریان پاره پاره بی سر اما میگن زینب اینجا کاری کرد دوست و دشمن به حال زینب گریه میکردن راوی گفت نگاه کردم دیدم اسبام دارن برا زینب گریه حتی خیوله هم و سلالله یا اهل بیت النوم.